أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به و بدیهای آنچه کرده اند برای آنان آشکار شد و آنچه که مسخر اشمی کردند آنها را فرو گرفت و قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواكم النار و مأواکم النار و ما لكم من ناصرین و به آنها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم همانگونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش دوزخ است و شما هیچ یاوری ندارید بی اتخذتم آیات الله هزو و غردکم الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریفت پس امروز نه آنها از آن دوزخت بیرون آورده میشوند و نه هیچ عذری از آنها پذیرفته می شود الحمد رب و رب الارض رب پس ستایش مخصوص خداست پروردگار ها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وكبريا و بزرگی در آسمان ها و زمین از آن اوست و او پیروزمند حکیم است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بنام خدا و بخشندی مهربان ها میم تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است ما خالق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است جز به حق و برای مدتی معین نیافریده این و کسانی که کافر شدند از آنچه بیمشان میدهند روی گردانند. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم انكم ای پیامبر، به آنها بگو، آیا دیدید اید آنچرا که جز خدا می به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدند، یا اینکه آنها در آفرینش آسمانها شرکت داشتهاند اگر راست می‌گویید کتابی آسمانی پیش از این قرآن، یا اثری از علم گذشتگان، بر صدق ادعای خود برای من بیا برید و من اضل من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون چه کسی گمراه است از آنکه که معبودی غیر از الله را می‌خواند که تا روز قیامت هم دعای او را اجابت نکند و آنها از خواندن و دعای ایشان کاملا بیخبرند؟ و اذا حشرن ناسو کانو لهم اعداء و کانو بی و اینگامی که مردم در قیامت گرد آورده شوند آنها دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار می کنند وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ للحق لَمَّا جَاءَهُمْ هذا فِحْرٌ مُبِينٌ و هنگامی که آیات روشن ما برانها کسانی که کافر شدند در برابر حقی که برای آنها آمده است گویند این جادوی آشکار است أم یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملكون لی من الله شیعه هو اعلم بما تفیضون فیه کفا بهی بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم یا میگویند پیامبر خود آن را بافته و به خدا نسبت داده است ای پیامبر بگو اگر من آن را بافته و به خدا نسبت داده باشم از شما نمیتوانید در برابر عذاب و خشم خداوند از من دفاع کنید تنها او به آنچه شما درباره آن قرآن میگویید و گفتگو میکنید آگاهتر است و گواهی او میان من و شما کافی است و او آمرزنده مهربان است الما كنت بدعا عني وَمَا وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين hey, من از میان پیام بران وجودی نوزهور نیستم و نمیدانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد. من تنها از چیزی پیروی می کنم که به من وح می شود و جز بیم دهنده آشکاری نیستم.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 ای پیام بر بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید و شاهدی از بنی اسرائیل بر نشان های آن در تورات شهادت داد پس او ایمان آورد و شما سرکشی و تکبر می چه بر سر شما خواهد آمد مسلما خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند.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 به کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند اگر این دین بهتر بود هرگزانها در پذیرش آن بر پیشی نمی گرفتند. و چون بدان هدایت نشدند خواهن گفت این یک دروغ قدیم است و من قبله کتاب موسی امام و رحمه و هذا مصدق مصدّقسانن عربليذرا الذي والمون و بشال مسینی و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و این قرآن کتابی تصدیق آن که به زبان عربی است تا کسانی که ستم کردند بین دهد، و برای نیکوکاران بشارتی باشد این الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند پس بر آنها ترسی نیست نه آنها اندوهگین شوند. اولائک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون آنها اهل بهشتند جاویدانه در آن باشند این پاداش اعمالی است که انجام میدادند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 حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني قال رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند مادرش او را به دشواری حمل میکند و به دشواری بر زمین گذارد و دوران حمل او و از شیر باز گرفتن او سیما ماه است تا هنگامی که به کمال توانمندی و برسد و به سن چهل سالگی برسد گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی ای به جای آورم و کار شایسته انجام دهم که تو از آن خوشنود شوی و فرزندانم را صالح گردان بیگمان من به سوی تو بازگشتم و توبه نمودم و بیشک من از مسلمانانم اِكَ کسانی تَقَبَّلُوا که أَحْسَنَ مَا کارشان وَتَجَاوَزُوا عَنْ سيئاتهم في اصحاب الجنة الصدق كانوا <تصحب> آنها كارشان را و از گناهانشان میگذریم و در زمره اهل بهشت هستند این وعده راستی است که وعده داده می‌شدند والذی قال لوالدیه اف لکما اتعباننی ان اخرج وقد خلت قرون من قبلی أن أخرج وقد قد القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أثاثير و کسی که به پدر و مادرش گفت افت بر شما آیا شما به من وعده میدهید که از گورم بیرون آورده میشوم در حالی که نسلها پیش از من گذشته اند و هرگز برانگیخته نشدند و آن دو خدا را به یاری میطلبند که وای بر تو ایمان بیاور یقینا بعد خدا حق است پس او میگوید اینها چیزی جز افسان های پیشینیان نیست اولئک الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين آنها کسانی هستند که همان سخن در زمری امتهایی که پیش از آنها از جن و بر آنها محقق شده است، بیگمان آنها زیانکار بودند. و درجات درجاتم مما عملو، ولی وفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. و برای هر یک از آنها درجاتی است به حسب آنچه انجام داده اند و تا خداوند پاداش کارهایشان را به تمامی به آنها بدهد، و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد. و یوم یعرضوا الذين كفروا على النار انهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب فاليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون و روزی که کافر شدند براتش عرضه کنند و به آنها گفته شود در زندگی دنیا نعمتهای پاکیز و لذتهای خود را از بین بردید و از آنها بهرهمند شدید. پس ای کافران امروز به عذاب خار کننده پاداشتان می‌دهند. به و این به خاطر گردنکشی و استکباری که به ناحق در زمین می‌کردید و به خاطر نافرمانی و گناهانی که انجام می‌دادید. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إن خاف عذاب یوم عظیم ای پیامبر داستان هود برادر قوم عاد را به یاد آور که چون قومش را در سرزمین احقاب هشدار داد و به راستی هشدار دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشته بودند که جز الله را نپرستید بیگمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قالوا قالو اجئتنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا این كنت من الصادقین آنها گفتند آیا آمده ای تا ما را از پرستش معبودهایمان هایمان برگردانی؟ پس اگر از راست گویانی آنچه به ما وعدداده ای برای من بیاور بر قال انما الْعِلْمُ عند اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا ارسلت بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاکُمْ قوما تجهلون هود گفت علم تحقق آن بعدها تنها نزد خداست و من را که به آن فرستاد شده ام به شما می رسانم ولی کن من شما را قومی می بینم که پی نادانی می کنید فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهن قَالُوا هذا عارض منطرناه بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب اليم پس هنگامی که آن عذاب را به صورت ابری که رو به راه وادی های است دیدند خوشحال شدند گفتند این ابریست که بر ما باران میبارد. هود گفت نه بلکه این همان است که در آمدنش شتاب می بادی است که عذاب دردناکی آن است تدمر کل شیء بی امر ربها فاصبحو لا یرا إلا مساکنهم کذالک نجزی القوم همه چیز را به فرمان پروردگارش ویران و نابود می کند. پس چنان شدند که جز خانه هایشان دیده نمی شد ما اینگونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم ولقد مکنناهم فی ما مکنناکم فیه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 از کانو یجحدون بی الله و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون ما به آنها چنان تمکن و قدرتی دادیم که به شما آن قدرت و تمکن ندادیم و برای آنها گوش و چشمها و دلها قرار دادیم پس گوشهایشان و نه چشمهایشان و نه دلهایشان چیزی از عذاب الهی را از آنها دفع نکرد و به حالشان سودی نبخشید. چون آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آنچه را که به مسخره و ریش خند می گرفتند آنها را فرو گرفت. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا ما مِنَ من وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لعلهم یرجعون و به راستی ما غریه ها و وَآيَاتِ هایی را که اطراف شما بودند حلاک کردیم و آیات خود را به صورتهای گوناگون برای آنها بیان کردیم تا شاید بازگردند دون كانوا يفترون. پس چرا کسانی را که آنها به جای خداوند برای قصد تقرب به خدا معبود خود گرفتند یاریشان نکردند؟ بلکه از نظرشان گم شدند و این بود نتیجه دروغشان و آنچرا افترامی بستند،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 و یاد آور ای پیامبر هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند پس چون نزد او حضور یافتند به یک دیگر گفتند خاموش باشید آنگاه چون تلاوت قرآن به پایان رسید همچون بیم دهندگانی به سوی قوم خود بازگشتند قالو یا قومنا این نا سمعنا کتاب انزل من بعد موسا. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق یهدی الی الحق و طریق مستقیم گفتند ای قوم ما یقینا ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است که تصدیق کنندی کتاب های پیش از خود است به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند یا قومنا اجيبوا داعي, الله اجيبوا داعي الله وآمنوا داعي الله به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای قوم ما دعوت این دعوت کننده خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خداوند برخی از گناهانتان را برای شما بیامرزد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه و هر کس دعوت دعوت کننده خدا را پاسخ نگوید پس هرگز نمیتواند در زمین از عذاب خدا بگریزد و او را غیر از خدا هیچ یاوری نیست آنان در گمراهی آشکاری هستند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 آیا ندیدند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها ناتوان و درمانده نشده قادر است بر آنکه مردگان را زنده کند آری او بر هر چیزی تواناست است و یوم یعرض الذین کفروا علی النار علیت هذا بالحق بولوا بنا و قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون و روز قیامت روزی است که کسانی که کافر شدند برای عذاب بر آتش عرضه میشوند و به آنها گفته می شود آیا این عذاب حق نیست گویند چرا سوگند به پروردگارمان که حق است گوید پس به خاطر کفری که میبرزیدید عذاب را بچشید فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کانهم يوم يرون ما یوعدون لن يلبثوا إلا ساعتا من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پس ای پیامبر صبر کن همچنان که پیامبران اولو العزم صبر کردند و برای عذاب آنها شتاب نکن روزی که آنچرا که وعده داده میشوند ببینند گویی جز ساعتی از روز در دنیا درنگ نکرده اند این قرآن ابلاغی است پس آیا قومی جز قوم فاسق و نافرمان حلاک میشوند الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمال آنان را نابود کرد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نزل عَلَى محمد وَهُوَ الحق من ربهم كفر عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایست انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و همه از سوی پروردگارشان گارشان حق است نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را از آنها دور ساخت و بخشید و کارشان را اصلاح نمود ذالک بینن الذین کفروا تبع الباطل و انن الذین آمنوا الحق من ربهم این بدان سبب است که کسانی که کافر شدند از باطل پیروی کردند و همانا کسانی که ایمان آوردند از حقی که از سوی پرورد نازل شده است پیروی این اینگونه خداوند برای مردم مسائلشان را بیان میکند.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 ولو یشاء الله لن منهم ولكن یبلو بعضكم ببعض والذین قتلوا فی تبیل الله فلن یضل اعمالهم پس هنگامی که در میدان نبرد روبرو شدید با کسانی که کفر برزیدند گردنهایشان را بزنید و نبرد را ادامه دهید تا هنگامی که بسیاری از آنها را از پای درآوردید و کشتید پس بند اسیران را محکم ببندید آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید و رهایشان کنید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهاد حکم این است و اگر خدا می‌خواست از آنها انتقام می‌گرفت ولیکن می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند پس خداوند هرگز اعمال آنها را نابود نمی‌کند سريهديهيم و بالهم. به زودی آنها را هدایت می‌نماید و حال و کارشان را اصلاح می‌کند ويدخلهم یدخلهم الجنة عرفها لهم، و آنها را به بهشتی اوصافش برای آنها بیان داشته است، وارد میکند. یا ایوها الذین آمنوا، إن تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر دین خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می میکند و گامهایتان را ثابت و استوار میدارد والذین لذین کفرو لهم واضل اعمالهم و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را نابود کرد ذلک كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم این بدان سبب است که آنان آنچه را که خداوند نازل کرده است ناپسند داشتند پس خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد. افلم یسیرو فی في الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم ولی کافرین امثالها آیا در زمین سیر نکردن تا بینگرند آقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ خداوند اموال و دیارشان را بر سرشان ویران کرد و آنها را نابود ساخت و برای کافران کیفری مانند آن خواهد بود ان الله مولا آمنوا و ان لا مولا لهم. این بدان سبب است که خداوند یاور و مولای کسانی که ایمان آوردند و آنکه کافران مولا و یاوری ندارند. این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 بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به باغهایی از بهشت وارد می که نرها از زیر درختان انجاری است. و کسانی که کافر شدند از متاع دنیاوی بهره می گیرند و می خورند، همچنان که چهار پایان می خورند و آتش جهنم جایگاه آنان است. و که این من قریت هی اشد قوة من قریت کلتی اخرجت که اهلك اهلکناهم فلا ناصر لهم چه بسیار شهرهایی که مردم آنها از مردم شهرتو که بیرونت کرده اند توان تر بودند ما حلاکشان کردیم پس هیچ یاوری نداشتند افمن کان علی بینه من ربّه کمن زین له سو وعمله واتبع اهواهم آیا کسی که از سوی پروردگارش بر شیوه روشنی باشد همانند کسی است که کردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند مثل الجنتی التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آثن و انهار سبن لم يتغير طعمه وانهار وانهارم من خمر لذت للشرابين وانهارم من عسل مصفى و فيها من كل الثمرات من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقومان حمیما فقطع امعاءهم وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعد داده شده چون است که در آن نرهایی از آب زلال بدبوه نشده و نرخایی از شیر که تعم آن دگرگون نگشته، و نرخایی از شراب ناب که مای لذت نوشندگان است، و نرخایی از اصل مصفا وجود دارد، و نیز در آن برای آنها از هر گون میبه ها و از همه برتر آمرزشی از سوی پروردگارشان است، آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش جهنم و از آب جوشان نوشانده شوند که روده‌هایشان را پاره پاره کند و منهم من یستمیع من الیک حتا اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواءهم ای پیامبر گروهی از آنها به تو گوش فرا میدهند تا وقتی که از نزدت بیرون رفتند به کسانی که به آنان علم عطا کرده شده از روی استهزاء گویند الان محمد چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هواهای نفسانی خود پیروی کرده اند. و, زادهم و, آتاهم تقواهم و کسانی که هدایت یافتند، خداوند بر هدایتشان افزود و به آنان پرهیزگاری عطا فرمود. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَتَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ پس آیا آنها جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرار رسد به راستی آمده است پس چون فرارست پند گرفتن و ایمانشان چه سودی خواهد داشت فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم متقلبكم و پس ای پیامبر بدان که معبودی به حق جز الله نیست و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن و خداوند محل حرکت شما و قرارگاه شما را میداند ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فإلى أنزلت سوره محكمة وذكر فيها القتال رعيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه نظر المغشي عليهم من المو و کسانی که ایمان آوردهاند میگویند چرا سور نازل نشده که فرمان جهاد را بدهد؟ پس چون سور ای محکم و روشن نازل شود و در آن سخن از جنگ ذکر شده باشد؟ کسانی که در دلهایشان بیماری است؟ میبینی که همچون کسی که در سکرات مرگ قرار گرفته و بیهوش شده باشد به تو نگاه میکنند پس برای آنان شایستهتر است باعه و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فرمانبرداری نمودن و سخن نیکو گفتند، پس چون تصمیم قطعی جهاد گرفته شد اگر با خدا صادق باشند برای آنها بهتر است فهل عسیتم این تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو پس آیا اگر به حکومت رسیدید جل این امید است که در زمین فساد کنید و پیوند خیشاوندانتان را ببرید اولئیک الذین الله فأصمهم و بصارهم اینان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است پس گوشهای آنان را کرنموده و چشمهایشان را نابینا کرده است افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل هایشان ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم بیگمان كساني که بعد از روشن شدن راه هدایت برای آنها به پشت سر خود بازگشتند و مرتد شدند شیطان اعمال زشتشان را برای آنها بیاراست و با آرزوهای دراز فریبشان داد. ذالک باننهم قالوا للذین کرهو ما نزل الله سنطيعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم این بدان سبب است که آنها به کسانی که نسبت به آنچه خدا نازل کرده از وحی کراحت داشتند گفتند ما در پاری از امور از شما پیروی می کنیم و خداوند کاری آنها را میداند. داند. فکیس اذا یضربون و از حال آنها چگونه خواهد بود؟ هنگامی که فرشتگان مرگ جانهایشان را میگیرند، بر چهره‌ها و پشتهایشان میزنند. ذلک بِأَنَّهُ مُتَّبَعُ مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ این کیفر بدان سبب است که آنها از آنچه خدا را به خش می آورد پیروی کردند و خوشنودیش را کراحت داشتند پس خداوند اعمالشان را نابود کرد في الله آیا کتانی که در دلهایشان بیماری نفاق است؟ گمان کردند که خداوند کینه را آشکار نخواهد کرد. ولو نشاء نشاؤ ل آرینا کهم هم فی لحن القول. والله يعلم اعمالكم و اگر ما بخواهیم آنها را به تو ای پیام بر نشان میدهیم آنگاه آنان را با سیما و قیافه هایشان بشناسی و مسلما تو آنان را در طرز سخن گفتنشان میشناسی و خداوند اعمال شما را میداند وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منكم وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوَ اَخْبَارَكُمْ و همه شما را قطعا آزمایش می کنیم تا مجاهدان از شما و صابران را معلوم کنیم و اخبار و احوال شما را بیازماییم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا قرة من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله وسيحبط أعمالهم بیگمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند و بعد از آشکار شدن راه هدایت برای آنها با پیام بر مخالفت ورزیدند هرگز زیانی به خداوند نمیرسانند و خداوند به زودی اعمالشان را تباه خواهد کرد یا ایوها الذین آمنون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و تبطلوا اعمالكم ای کسانی که ایمان آبرده اید خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و اعمالتان را باطل نکنید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بیگمان کساني که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر مردند پس خداوند هرگز آنها را نخواهد آمرزید فلا تهنوا وتدعو الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن یتركم أعمالكم پس ای مؤمنان هرگز هنگام جهاد سست نشوید و دشمنان را به صلح و آشتی دعوت نکنید. در حالی که شما برتر و خدا با شماست و چیزی از پاداش اعمال اعمالتان را نخواهد کاست اینما حیات الدنیا لعب و له و ان تؤمنوا وتتقوا یاتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم جز این نیست که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید خداوند پاداشهایتان را به شما خواهد داد و تمام اموالتان را از شما نمی طلبد اگر تمام آن را از شما مطالب کند انگاه اصرار نماید باخی میبرزید و کینه‌های های شما را آشکار میسازد ها انتم ها تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم من يبخل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 آگاه باشید شما همان کسانی هستید که برای انفاق در راه خدا فراخوانده میشوید می شوید پس بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر کس بخل ورزد جز این نیست که بر خیشتان بخل ورزیده است و خداوند بی نیاز است و شما همه فقیر و نیازمندید و اگر روی بگردانید خداوند گروهی دیگر را به جای شما می آورد آنگاه آنها مانند شما نخواهند بود بسم الله الرحمن الرحیم فتحنا لك فتحا براستی ما برای فتح و پیروزی آشکاری مقرر کردی این ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ويتم نعمته علیک و صراطا مستقیما تا خداوند گناه گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت نماید. و خداوند به پیروزی شکست ناپذیری تو را یاری کند. هو الذي السكينة في قلوب المؤمنين إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما است که در دل مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانای حکیم است لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها والدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظیما تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغ از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودان در آنجا خواهند بود و گناهانشان را از آنها میزداید و میبخشد و این نزد خدا کامیابی بزرگی است. و المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ضان بالله الله علیهم دائرة الثوء وغضب الله علیهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصیرا و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد میبرند عذاب كند حوادث ناگوار و بد بر آنان باد و خداوند بر آنها خشم گرفته و آنها را لعنت کرده و جهنم را برای آنها آماده ساخته است و چه بد است. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزیزا حكيما و سپاهیان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند پیروزمند حکیم است اینا ارسلنا کشاهدا و مبشرا و ای پیامبر، براستی ما تو را گواه و مجد دهنده و بیم دهنده فرستادیم. لیتو منو باللہ و رسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوا بكرته واصيلا تا شما ای مردم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و دین او را یاری کنید و او را بزرگ دارید و بامداد و شامگاه او را تسبیح گویید إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يَدُ الله فوق <تصفيق> أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى <تصفيق> بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بیگمان کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست آنهاست، پس هر کس که پیمان شکنی کند، تنها به زیان خودش پیمان شکسته است، و هر کس به آنچه که بر آن با خدا عهد بسته وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد،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 قل فمن یملك لكم من الله شیئا إن اراد بكم برا او أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبیرا بهزودی بازماندگان از عراب بادیه نشین عذر آورده و به تو ای یامبر میگویند نگهداری اموال و زن و فرزندانمان ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبی همراه شما باشیم پس برای ما طلب آمرزش کن آنها با زبانهای خود چیزی میگویند که در دلهای آنها نیست بگو چه کسی میتواند در برابر خدا از شما دفاع کند اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی بخواهد بلکه خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است بل ظننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلك في قلوبكم و زین ذلك في قلوبكم و ظن السوء و كنتم قوما بورا بلکه شما گمان بردید که پیام بر خدا و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خیش باز نخواهند گشت و این گمان در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد بردید و قومی حلاک شده و نابود گشتید و من لم یؤمن بالله و رسوله فإننا سعيرا. و هر کس که به خدا و پیام برش ایمان نیاورد پس بداند که ما برای کافران آتش سوزان جهنم آماده کرده ایم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست است هر کراب خواهد وهر که را بخواهد عذاب میکند و خداوند آمرزنده مهربان است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوهاذرنا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانون لا یفقهون إلا قلیلا هنگامی که به سوی غنایم خیبر حرکت نمودید تا آنها را برگیرید بازماندگان هدیبی خواهند گفت بگذارید ما نیز در پی شما بیاییم آنها میخواهند کلام خدا را تغییر دهند. ای پیام بگو هرگز از پی ما نیایید. این چونین خداوند از پیش فرموده است. پس آنها خواهند گفت نه بلکه شما به ما حسادت میورید بلکه حقیقت این است که جز اندکی در نمیابند.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 و ای پیامبر به بازماندگان از عرب بادیه نشین بگو به زودی فراخوانده میشوید به سوی قومی سخت جانجوی و نیرومند که با آنها نبرد کنید یا اسلام بیاورند پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداشینیکی نیکی به شما میدهد و اگر سرپیچی کنید، همان گونه که پیش از این سرپیچی کردید، شما را به عذابی دردناک عذاب میدهد می‌دهد. لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطعِ اللَّهِ و رسوله يدخله جنب برنابینا گناهی نیست و بر لنگ نیز گناهی نیست و بر بیمار هم گناهی نیست اگر اینها در جهاد شرکت نکنند و هرکس از خدا و رسولش اطاعت نماید او را در باقهایی از بهشت وارد می سازد که نهرها از زیر درختان آنجاری است و هرکس که سرپیچی کند به عذابی در او را عذاب میکند. لَََ رَضِيَ اللهَّهُ عَ المُؤمنِنينَ هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود شد پس آنچه که در درون دلهایشان بود دانست لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی و فتحی نزدیک را به آنها پاداش داد و مغانم کثیرت یأخذونها و کان الله عزیزا حکیماد و همچنین غنیمت های فراوانی که آن را به دست می و خداوند پیروزمند حکیم است وعدکم الله مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لكم هذه. فعجل لكم هذه وكف ايد يمناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما خداوند غنیمت های فراوانی به شما وعده داده است که آنها را به دست می آورید پس این غنیمت خیبر را برای شما زودتر فراهم ساخت و دست تعدی مردم مخالف و دشمن را از شما باز داشت و تا عبرت به نشانهای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و الله علی كل شيء قدیرا و نیز قنیمتهای دیگری که هنوز به آنها دست نیافته اید به تحقیق خداوند به آن احات دارد و خداوند بر همه چیز تواناست ولو قاتنکم الذین کفرون ولو الادبارتم ملا یجدون ولیا ولا نصيرا و اگر کسانی که کافر شدند با شما میجنگیدند، یقیناً یقینا پشت میکردند و از میدان فرار میکردند، آنگاه یار و یاوری نمی یافتند سنت الله قد خلت من قبل ولن تجد الله تبدیلا این سنت خداوند است که پیش از این نیز گذشته است و برای سنت خدا هرگز دیگر نخواهی یافت. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببقءه مكة من بعد أن أنفركم عليهم و, الله بما تعملون بصيرا. و او کسیست که دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در درون مکه بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز گرداند باز داشت و کوتاه کرد و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست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 آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد مسجدالحرام بازداشتند و از رسیدن قربانی به قربانگاهش بازداشتند و اگر مردان و زنان مؤمن مستضعف در مکه نبودند که شما آنها را نمیشناسید و بیم آن نبود که آنها را پایمال و هلاک کنید پس ندانسته از کشتن آنها به شما گناه و ننگ و رنج می خداوند هرگز از این جنگ جلوگیری نمیکرد تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود بارد کند. اگر مؤمنان و کافران در مکه از یک دیگر جدا بودند مسلما کافرانشان را به عذابی دردناک عذاب می کردیم.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 حق بها و اهلها و كان الله علیما آنگاه که کسانی که کافر شدند در دلهای خود حمیت همان حمیت جاهلیت نهادند پس خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود و آنها را به کلمه تقبا ملزم ساخت و از هر سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام ان شاء الله عاملين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا براستی خداوند رؤيای رسولش را به حق تحقق بخشید قطعا اگر خدا بخواهد همه شما در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس ندارید، وارد مسجد الحرام خواهید شد. پس خداوند چیزهایی را میدانست که شما نمی دانستید و پیش از آن فتح و پیروزی نزدیکی برای شما مقرر نمود. <تصفيق> اُرسِلَ وَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا او کسی است که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند و کافی است که خداوند گواه باشد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فیما هم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مفلهم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي غيظ بهم الكفار. وعد الله آمنوا الصالحات منهم مغفرة واجرا محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و در میان خود مهربانند آنها را در حال رکوع و سجده میبینی که از خداوند فضل و خشنودی میطلبند نشانی درست کاری آنها در چهره از اثر سجد نمایان است این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند سپس آن را تقویت کرد تا محکم گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی بامی دارد تا از دیدن آنها کافران را به خش ماورد خداوند به کسانی از آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعدی آمرزش و پاداش عظیمی داده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین ید الله ورسوله واتقوا الله این الله سمیع علیم ای کسانی که ایمان آورده اید فراروی خدا و رسولش پیش دستی نکنید و از خدا بترسید بیگمان خداوند شنوای داناست. یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ای کسانی که ایمان آورده اید صدایتان را فراتر از صدای پیامبر نکنید و با او با آواز بلند سخن نگویید همان گونه که با یکدیگر بلند سخن میگویید که مبادا در حالی که نمیدانید اعمال شما نابود گردد إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرته وأجر عظيم بیگمان کسانی که صدای خود را نزد رسول خدا پایین میآورند آنها کسانی هستند که خدا دلهایشان را برای تقوا آزموده و خالص گردانیده است برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی است ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اثرهم لا يعقلون بیگمان کسانی که از پشت حجره ها صدایت میزنند بیشترشان بیخردانند ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خیرا لهم والله غفور رحيم و اگر آنها صبر میکردند تا که خود به سوی آنان بیرون آیی برای آنها بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان است يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبینو ان تصیبو قوما بجهالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین ای کسانی که ایمان آوردهید اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید آنگاه بر آنچه انجام دادید پشیمان شوید وَعْلَمُوا ان فِيكُمْ رسول الله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 و بدانید همانا رسول خدا در میان شماست، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، یقیناً به مشقت خواهید افتاد، ولی کن خداوند ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلهایتان زینت بخشید، و کور و فسق و نافرمانی را برایتان منفور و ناپسند گرداند، اینانند که هدایت یافتگانند. فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم و خیر فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانای حکیم است و طائفتان من المؤمنین قتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقفقوا این الله يحب و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخواستند میانشان آشتی برقرار کنید پس اگر یکی از آن دو دیگری تجاوز کرد با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها به عدالت صلح برقرار کنید و ادالت پیشه کنید بیگمان خداوند عادلان را دوست می‌دارد ایننمل المؤمنون <سؤالان> اخوه فأصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون یقینا مؤمنان برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا بترسید باشد که شما مشمول رحمت شوید یا ایوها الذین آمنوا لا قوم من قوم عسا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسا أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أن ستم ولا تنابذوا بالالقان بئس الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون اي که ایمان آورده اید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره نکند شاید آنان از اینها بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را شاید آنان از اینها بهتر باشند و از یک دیگر عیب نکنید و یک دیگر را با القاب زشت نخانید که پس از ایمان آوردن نام فسق بسیار زشت و بد است و هر که توبه نکرد پس آنانند که ستمکارند. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا ایو حب احدکم این یأکل لحم اخیه ميتا فکرهتمو واتقوا الله این الله تواب رحیم ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمنهای بد بپرخیزید بیشکت بعضی از گمانها گناه است و در امور دیگران تجسس و کنجکاوی نکنید. و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد. پس البته آن را ناپسند دارید. و از خدا بترسید بیگمان خداوند به پذیر مهربان است. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر و وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم این الله علیم ای مردم بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ها و ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید همانا را میترین شما نزد خدا پرهیزگارترین ترین شماست بیگمان خداوند دانای آگاه است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 این الله غفور رحیم اقراب بادی نشین گفتند ایمان آورده ایم ای پیامبر بگو شما ایمان نیاورده اید لیکن بگو اید اسلام آورده و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است و اگر خدا و پیامبرش را اطاعت کنید چیزی از پاداش اعمالتان کاسته نمیشود شود، همانا خداوند آمرزنده مهربان است اینما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون مؤمنان حقیقی تنها كسانیاند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردهاند سپس در این باره شک و تردید نكردهاند و با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند این که راست گویانند. قل اتعلمون الله بدینكم والله یعلم ما في السماوات و ما في الارض والله بكل شیء علیم ای پیامبر بگو آیا خدا را به دین خود با خبر در حالی که خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است می‌داند و خداوند به همه چیز آگاه است یمنون علیک ان قل لا تمنوا علی اسلامكم بل الله یمن علیكم أن هداكم ان كنتم صادثين. آنها بر تو ای پیام بر منت میگذارند كه اسلام آوردهاند بگو اسلام آوردنتان را بر من منت نگذارید بلکه اگر راست گویید خداوند بر شما منت می که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است این الله یعلم غیب السماوات والأرض والله بصیر بما تعملون همانا خداوند غیب آسمانها و زمین را میداند و خداوند به آنچه آنجا انجام میدهی بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. قا و القرآن المجید قاف سوگند به مجید تو بر خداي بل عجبو انجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب بلکه آنها تعجب کردند که که هشدار ای از میان خودشان به سوی آنان آمده پس کافران گفتند این چیزی عجیب است متنا و ترابا رجع بعید. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد این بازگشتی بعید است قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیر به راستی ما میدانیم آنچه آنچرا زمین از آنها می و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست بلکه ذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند پس آنان در کاری سرگردان و پریشان هستند افلم ینظرون بیل السماء فوقهم کیف بنيناها و زیناها و لها من فروج آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی نگرند که چگونه آن را بنا کرده ایم و آرازده ایم و هیچ شکافی در آن نیست و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج و زمین را گستردیم و در آن کوخهای بلند و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه خوشمنظر در آن رویاندیم تبصیرت و ذکرال کل عبد منیب تا همه اینها بینش و پندی برای هر بنده توبکاری باشد و مِنَ من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید و از آسمان آبی پربریکت نازل کردیم پس با آن ها و دانه های شدنی رویاندیم و نخل باسقات لها طلع نضید و نخل های بلند آمد که خوشه هایی بر هم چیده دارند رزقاً للعباد و احیینا بهی بلدتاً ميتا کذالک الخروج همه اینها برای روزی بندگان رویانیدیم و با آن باران سرزمین مرده را زنده کردیم بر آمدن از گور, آمدن از گور و زنده شدن نیز چنین است پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و سمود پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و قوم سمود پیام برانشان را تکذیب کردند و عاد و فرعون و اخوان لوط. باهمچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. و أصحاب الأيكة و قوم تبع كل كذب الرسل لفح وعيد باصحاب الأيكة و قوم تبع. هر یک از آنها رسولان الهی را تکذیب کردند پس وعده عذاب و بیم من بر آنها تحقق یافت افعینا بالخلق الاول اول بل هم فی لبس من خلق جدید آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم خیر بلکه آنها با این همه دلایل از آفرینش جدید در تردید و شک کند ولا قد خلقنا الانسان و ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد به ما انسان را آفریده ایم و چیزی را که نفسش به او وسوسه می کند می و ما از شاهرگ گردن به او نزدیکترین. تریم. از یتلق المتلقیان عنی یمین و عنی شمال قعید هنگامی که دو فرشته فراگیرنده بر جانب راست و چپ نشسته و را فرا میگیرند ما ینفظ من قول الا لدیه رقیب عتید هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر و آماده نوشتن است و جاءت فكره الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید و سکرات و سختی مرگ به راستی فرا رسید و به او گفته می ای انسان این همان چیزی است که تو از آن می گریختی و نفخا فی الصور ذالک یوم الوعید و در سور دمیده شود آن روز روز تحقق بعدی عذاب است و كل نفس معاها سائط و شهید. و هر کسی به عرصه محشر می آید در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی است لا کن انت فی غفلت من هذا فكشفنا عن که فبصرك که فبطر اليوم به او گفته می شود به راستی تو از این صحنه قافل بودی پس ما پرده را از چشم تو برداشتیم لذا امروز چشمانت تیز بین است وقال و فرشته هذا ما و وفرشته همنشین او میگوید این اعمال اوست آنچه که نزد من آماده و حاضر است القيا في جهنم كل كفار عنيد خداوند به فرشتگان مراقب فرمان میدهد. هر پاس سرکشی را در جهنم افکنید من ما علل معتدم مریب همان بازدارنده خیر تجاوزگر شکاک را الذی جعل مع الله الهان اخر فلقیاه في العذاب الشدید همان کسی که با خدا معبود دیگری قرار داده است پس او را در عذاب سخت بیفکنید قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هم‌نشین او از شیاطین گوید پروردگارا من او را به تقیان و گمراهی وادار نکردم لیکن او خود در گمراهی دور و درازی بود قد خداوند می‌فرماید: نزد من مجادله و مخاسمه نکنید و مسلما من پیش از این برای شما هشدار فرستاده بودم ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبد آن سخن نزد من تغییر داده نمی‌شود و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد یوم ننقول لجحنم نما هل انتلت وتقول یادآور روزی که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای و او میگوید آیا هیچ ابزون بر این هم هست و انلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید در آن روز بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک آورند تا آنها از آن دور نباشند. هَذَا ما تُوعَدُونَ به آنها گفته می شود. این چیزی است که به شما وعده داده می شود. برای هر رجوع کننده ای به سوی خدا و نگهدارنده پیمان به احکام الهی است. من خشی الرحمن بالغیب و بقلب منیب کسی که در نهان از خداوند رحمان بترسد و با قلبی تو در محضر او آمده باشد ادخلوها بسلام <تصفح> ذالک <ذلك يوم الخلوم> به آنها گفته می شود به سلامت وارد آن بهشت شوید که این روز جاودانگی است لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و در نزد ما افزون برین است و کم اهلتنا قبلهم من قرن هم اشد من هم بطشن فی البلاد هل من محیص و چه بسیار امتهایی را که پیش از انها هلاک کردیم که آنها از اینها قوی تر بودند پس در شهرها سیر و جستجو کردند آیا هیچ راه فراری وجود دارد؟ این فی ذلک لذکرال لمن کان له قلب او القد سمع و هو شهید بی گمان در این سخن برای صاحب دلان یا آنان که با حضور خاطر گوش فراده هند پندیز. و خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ السماوات والارض وما فِي بینهما فی وَمَا ایام و ما, و ما من لغوب و به راستی آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه خستگی و رنجی به ما نرسید فصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب پس آنها میگویند شکی باش و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و من اللیل فسبحه و السجود و نیز پارئی از شب و بعد از سجده ها او را تسبیح گوی و استمع یوم یناد المناد من مكان قریب به ای پیامبر گوش فراده روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا میدهد دهد یوم بالحق ذلك یوم روزی که همگان سیه را به حق می شنوند. آن روز خروج از گورهاست اینا نحن نحی و نمیت و المصیر همانا ماییم که زنده می کنیم و میمیرانیم و بازگشت همگان به سوی ماست یوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علینا یسیر روزی که زمین از روی آنها شکافت شود و آنها شتابان از گورها بیرون آیند این گردآوری برای ما آسان است نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذ شکر بالقرآن من يخاف و عند. ما به آنچه مشرکان میگویند داناترین و تو ای پیامبر برانها زورگونیستی آنها را به ایمان آوردن اجبار کنی پس کسی را که از عذاب و هشدار من می ترسد به وسیله قرآن پند و اندرز بده بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده مهربان و ذاریات دروه سوگند به بادهایی که خاک را میپراکند و سوگند به عبرهایی که بار سنگینی از باران را با خود حمل میکنند و سوگند به کشتی هایی که به آسانی بر روی دریاها در حرکتند و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند بیگمان آنچه به شما وعده داد شده قطعا راست است با این نین لاف و یقینا روز جزای اعمال واقعه شدنی است وسمائذ فک پسسم به آسمان که دارای راهها و ستارگان زیباست. بیگمان شما کفار در گفتار مختلف و گوناگون هستید من افک. کسی که در علم الهی از خیر و نیکی دور نگه داشته شده است از ایمان آوردن به آن دور نگه داشته می شود مرگ و لعنت بر دروغ گویان الذي کسانی که آنان در غفلت و جهل فرو رفته اند یه ای مدی پی میپرسند روز جزا کی خواهد بود. یوم هم على النار همان روزی که آنها بر آتش عذاب میشوند ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون و به آنها گفته میشود عذاب خود را بچشید این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید. این جنات و عیون. در روز قیامت مسلماً پرهیزگاران در باغها و چشمه‌سارهای بهشت هستند. آخِذِينَ مَا آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذلك و آنچه پروردگارشان به آنها عطا فرموده دریافت کرده اند بیگمان آنها پیش از این در دنیای نیکوکار بودند کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون آنها بخش اندکی از شب را میخوابیدند و به نماز و نیایش مشغول بودند و, هم و در سهرگاهان آمرزش طلب می کردند و فی اموالهم حق و در اموالشان برای سائل و تنگ دست محروم بحره و حقی بود وفی آیات للموقنین و در زمین عبرت و هایی برای اهل یقین است وفی افلا تبصرون و نیز در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ و, رزقكم و, و رزق و روزی شما و آنچه به شما وعده می شود در آسمان است. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مّسْلَمًا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن وعده حق است همان گونی که شما با یکدیگر سخن میگویید هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین ای پیامبر آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ ایل دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم کرون آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیم در جواب گفت سلام و با خود گفت گروهی ناشناس هستید. فراغ اهلی فجاء بعجل سمین. پس بنخانی به سوی همسرش رفت. و گوگ ساله بریان شدی فربهی برای آنها آورد فقربه ایلیهم قال الا تأكلون. سپس آن را به آنان نزدیک کرد و گفت آیا نمی خورید؟ فا منهم خیفه قالو لا تخف و بشروه پس چون دید دست به سوی قضا دراز نمی کنند، از آنها احساس ترس و وحشت کرد آنها گفتند نه ما فرستگان پروردگار توییم و او را به تولد پسری دانا بشارت دادند فاقبلت امراته في صره فطكت وجهها وقالت عجوز عقيم انگاه همسرش سار فریاد زنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت من پیرزنی نازا هستم چگونه فرزند میزایم قال وكذلك قال ربك ان فرشتگان گفتند پروردگار تو این چونین فرموده است و بیگمان او حکیم داناست